الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعت دائمت و علا اللهم افقنا جمیع المشترین و رحمنا و رحمتی یا ارحم الراحمین. ارز شد که تمثب شده به روایاتی که در پراشیدن ریش دیه هست برای به اثبات و حرمت تراشیدن ریش ما به مناسبت رسیم یک بحثی از تراشیدن ریش و مسئله دیش بشه بعد هم است... با ما که از سبوت دیه در تراشیدن ریش بتونیم در بیاریم که مثلا تراشیدن ریش حرام عرض شد که متعرض روایات متعرض روایات باقشین ابتدائن در این مسئله در جامعال احادیث در این جلدی که دیات الاحضا هست جلد سی یک و یک باب هیچده و باب چهار اندبسته در باب چهار ایشون روایاتی که مربوط به موی زن هی. از کلم سه زن با من خرم میکنه در هر حال ما یک روایاتی داریم در باب زن که اون حساب خاص خودش رو داره و ما الان بیشتر روی بحث ریش مرد یا موی سر مرد روایاتی که معلوم میشه. روایاتی که ما در مقام داریم دیروز حدیث اولیش رو خوندیم است که مرحوم کلینی در کافی حدیث شماره که اون باب 18 این دستان از, دست از خواب عطا لبن زیاد عرض کردم که وقتی یه ادسا من اصحاب رو غیر از اینکه اسما اینا ذکر شده تا اونجایی هم که من میدونم حالا علم من اینا می می این این رو میخوام میگم و که اینکه این اسما این رو ورده مرحوم علامه است که مراد از, از, از اده زیاد فلان و فلان و فلان اسم ورده ایشون مثلا بین علامه تا زمان کلی نزدیک خب 650 سال فاصله است مثلا بیشترش دیگه توشون به حال این نبوده تا علامه اسم برده که این مراد از این اده این که دو مردم اده در کافی هست که علامه اسم نبوده حالا اگه اونا پیش آمد به توضیح اما اونجا ارزمی که اسم برده نشود اده تو من اصحاب انا ارز کردم چهارتان یا پنجتان که این چهارتا که نهارو میکنن احتمالا میخواد محبوب کنونگی در جمعیع نسخ سر هست اونگه اده تو مثل این که شما در جمعیه چاپ های کافی این بواید اینجور آنه هم سهل ابن زیاد در مورد سهل بحث زیاد است و جایش هم اینجا نیست هم محمد بن الحسن بن شمون اصلا این ابن شمون از غلاق بسر تدریف شده جزء غلاق زعیف جدا و احتمال داره چون اینا نوشته نشده متاسب کنه مجموعه چیزی که ما در آثار هر جمعه رجال داریم زعیفه صاحبا نسبت به حدیث ما زعیفه باید ظاهنگ ناداریم بعد از این ادعا بکنیم. بکنیم به احتمال بسیار این که نوشته نشده مرحومه سهلت زیاد سفری به عراق داشته و میراسهای عراق رو به قوم ابرده یکی از روابط رابطه بین عراق و قوم ایشان، ظاهرن هم به کوفه رفته چون میراث کوفه هم داره به بسه رفته چون این شمون میاد ما به ماست ما به بغداد رفته از ایشون مثلا از بزرکی نقل کرده ظاهرا ایشان در اراق سفری که به اراق داشته منابع خوبی رو به خوم آورده یکیش هم همین کتاب الان هم محمد بن حسن بن شمون که ارز کلم از قلات بسرست و ضعیفه ان عبدالله ابن عبدالرحمن که هم بهش اختصارا نه الاسم میگن این به شدت حدیب شده حتی نسبت کذب و تضاب و غذا از این حرف بیشان داده شده خیلی شدید و چون الان آن بحث ما خیلی رو این یه نکاتی هم در این مطلب هست که باید جدیه انشاءالله هست ان نسمع نسمع نسمع ابن عبدالملک عبدالملک بن ابن نمارک بن مسنع جدیشم مسنع جدی جدی شال مسنع اینی که مرحوم نجاشی در شرح حالش به سید المسامعه ظاهرا مرادش از سید این باشه چون هم جت بشمسنع هم جد جدی شمسنع مسنع ابن عبدالملک بن ابن مالک بن یک دو تا مسنع توی ردیف‌های جدیش داره در شواهد تاریخی که ما داریم این جد دوم ایشان مالک بن مسند شخصیت شخصیت‌های معروف بصره بوده. این در ابن عبدالحدیث جلد 4 صفحه 355 هست، اینا میکنه اونجا اسمشون آورده. اما از بقیه شون فعلا اسم نداریم. اما خود این مسند مرد بزرگوار شخصیت بزرگی به تعبیر ایشان مراد نجاشی، هم رئیس اشیره بوده، و ابن وائل جزء اشاره معروف بوده و ثقه بوده. مسلم. ولی لکن ارز کردم من دیروز حالا اینشالا با دیگری که اثر بیشتری زده متعرض بشم اصولاً حدیث رو به لحاظ جغرافی ها باید حساب کرد کمتر حساب کرد بهترین حدیث ما در درجه اول حدیث کوفه است. همزه از کردم کرارن و مرارن و تکرارن حدیث ما اساساً در مدینه صادر شده اما تدوین بیشترش در کوفه است. چرا در حده هشتاد درصده روایاتی که ما منحیص المجموع هنوز در دسترس داریم هسکو فرسی چیز رودو شد دست دست دست در دسترس هفتش دستارش در بسرست ضعیفه و چیز کمتری در مدینه هست خیلی کم کمش مثلا در قوم هست تازه برز از اشعاره به خدمت امام سادر رسید اشعاره قومجد جد احمد ارشالی ایمام تکوتوب که رواید کردن چون اصلا قومی ها قبل از مثل زمان امام سجد مثلا اشاره برای ها میراث بسری ما ضعیف یک دو اصولاً شیعه در بصره کم بودن این نقطه دوم که اصولا شیعه کم بودن حوزه های علمی ما هم در بصره کم بوده خوب یقت بکنین اینی که مرحوم احمد اکشعری از قول و شا نهارو میکنه شنیدین قسطش اینه دیگه را شام یه کتاب خیلی اثر چون احمد اشعری مثلا به کوفه برای به عراق برای نقل حدیث کتاب عوامو ازش گوش بکنه سماع بکنه بعد را شام میگه اگه من میدونستم که شما اینقدر عاشق حدیث هستین خب ما بیشتر رو به حدیثونی چون من اینی از رشتو سمن داره تو داره شامل از کشیه 900 تا یا 600 تا شیف. نه فقط یعنی اگر تو ستنا یا تو شما شیخ بی مسیح هاذا کلم میگن حدیث اون جعده رو محمد یعنی این نشون میده کثرت حدیث رو در کوفه حالا اون قسمتش مهم نیست قسمت مهمش از نظر من وقتی زیاد شد، حوزه شد، بحث شد، خایه نهای تنقیح میشه، مبارزه میشه این سر اون سوالات عمر بن حنظله همینه میگه این دو تا فشنیم در کوفه مراجعه اون فقها با هم مختلفن این فقیه چی امام میگه بعد اورا و اعادله بعد یانو مثلا مثل همه بعد میگه علمشونه را خونید خب علمشون به شما برمیگرده روایات شما متوازیه یکی کی از شما یه چیزی دارم خیلی اون سوال جواب ما راهندله لطیفه یعنی میخواد به امام فردا کوفه اینجوری اختلاف هست اجازه امام مثلا بعد میفرماید اگر یک مطلبی ده نفر از نظر شیعه یک نفر اون ده نفر درست میگه آ با دو تا پنج تا خمس شما نگین این نشون چه مقدار اختلاف در سخت کوفه بود اون حدیث امرو ننزله خیلی حدیث لطیفیه به جهات نکات فنی خودشونه ترمه بود میگه آقای اوقات آغاز. ببینید امام هم چی دقت کنید امام هم نفت نمیکنه مثلا بگه ببینید موافقت آمنه مخالفت آمنه شرایط تقییه یه یعنی می خود امام دونه هز این مطلب این یه واقعیتیه که یک مطلب رو پنج رو نرکنه خلا این مطلب جعلی نیست مطلب واقعی است نه اینکه این مطلب خیالی باشه این نشون میده وجود یک وقت پس این طبیعت عقلها چی میشد منشأ این میشد که اینا بیان با هم مقایسه کنن مقایسه کنن این آقا اینجور گفت اون آقا اینجور گفت و لذا خواهی نخوای حدیث تانقیه میشد حدیث فیض مختار که امام ارجاعش در بسرا میگه اینی انیا خلل نشه ای جسد مسئله کوفه فع... اکاد و عکاد اشکو فی دین اصلا دیگه فی فع... اختلاف اصحاب من دیگه اصلا شک نمیکنم که تشیع درست نباشه نه شیعه باطل باشد. چون این اصلا همچین چیزی درو این یه چیزی درو طبیعیه очевидно میشه این تعبیر فی ذو مقاصد عکاد اشکو فی دین این اختلاف این اختلاف حالا کار ندارم به جرد اختلاف و ریشای اختلاف یکی از خصائصش این میشه که تنقیه میشه بررسی میشه تثیل میشه وقتی تو بصره این نموده حتی میکنیم اصلا در یه روایتی داره که امام به همین مسمایه بنه کشی داره که آیا تو که در اران حرسی زیاد سید و شهردان میریشون نه آمند شخصه دی هستم اونجا میمیشونم زیاد زیاد برن قبول من هم و قبول من مخالف نهل سندت هست من اگر بخام مارد تزویر بسید شهده برم برای من مشکل اجتماعی بباسی میکنم خب شخصیت شهدیت یک زیارت برایش مشکل به و لذا خوب دقیقه بکنید بیشترین تا آرز ما در حدیث کوفه هست و کمترین تا آرز ما در حدیث بسوه چون نبوده که تا آرز بکنه در بوده که البته این که در حدیث بسته تعالیزی در اول جا مفید بوده که ما یک قواهی در خمسرت ترکه این جاش اینجاییست به هر حال این روایت برمید بس دقت بکنید یک مثله بسیار لطیفی مرهوم نجاشی میگه لهو کتاب و نواده لهو نواده کسیرتون. کسیرتون یعنی مشهورتون و کتاب و هر بل بسیار اون هر بسیار که کتاب تاریفی نجاشید سکوت میکنه خوب دقیق این یکی از زرافت های نجاشی اینه کتاب رو به ایشان نسبت میده اما سرد نمیاره. جای لینگ نجاشی میگه لحو کتاب رو عبود میکنه کتاب رو سرد نمیانه اخی... ما همیشه عرض کردم بودنها رو میتونیم خوب بفهمیم، نه بودنها خیلی مشکل فهم میشون کسی چرا نه مرده. اون نها نه خیلی مشکلشون عالم نقد خیلی عالم ما مواردش مختلفه بعضی جهازی هم نجاشی نهارده هم شیخ نهارده اونجا به احتماط دید که اصلا کتابشون چون اجازات نهارده به قصد وقتی چون اجازات نهارده چی هم این یک نقطه خیهرسی لطیبیه در فهم عبارات نجاشی خیلی اومده اما در مورد موارده شیخ اورده تاریخش رو گفته لهم کتاب رو طریق بهش طریقا دقیقا همینه ابن شمون از عبدالله الاسم همین نسمه همینی که اینجا هداران. همین طریقی که اینجا هست که معلوم میشه که کلام شیخ از اصلاف ایشون برده به از راه بغداد. این از راه مشارق قوم سهل ابن زیاد رفت اراق از, از م... مشارق بقدان گرفته این دو تا عبارت مثل عباس نجاشی با عبارت شیف در فهرست و هم جمع بکنیم این, جور اینو این طور نتیجی اینجور میگم دینات علم کنی اقوب میخواد به سلا اینطور نتیجی گیری کتاب مثل متاسفانه توسط خط و قلوب و بسره طریقش تر... بوده طریق کتاب خط و قلوب و بسره بوده به احتمال قدی نجاشی اینجر نمیورده یعنی نجاشی وقتی مثل لفن نوازل کسی رسند اکتفا کرده به وجود کتاب در خارج به نوز همه کتاب خوب دقیق بکنی؟ چرا از نقطش چیه؟ چون من ارز کردم چرا را را مرارا خوب دقیق بکنی این نقطه زریفیه اصولا ما فهرست و اصحاب ما قردستان لاحرستان ما، نوشتن به عنوان مکمل رجال از مثل نجاشی شیخ اینقدر مقید یعنی شما کمل رجار یعنی جوری فتر تر رو خودشون به فارس بنیشن که حجت بین و بین الله باشه اهل سنت فهرست ما رو نداره که را نهاز کردن اصلا اینکه از فوارق اساسی ما با سنت فهرست اونا اون که بین و بین الله حجته تو رجال بودن ما تو رجال هم ودین شاید درصد ما با فهرسته سی درصد ما با رجاله چون بحث حجیت مطقه به اعتماد اصلا جهات متعدد در نظر گرفته میشه یکی وساقت و خود شخص محلق یکی حقیقت کتاب یکی طریقه به کتاب و یکی هم نسخ کتاب نجاشی خود محلق رو تعبیر به سید المسامه وجه و پلان شیخ عجیبه رئیس بکت نقائه و وجه و سید المسامه. لیکن کتاب رو هم دیگه لحو نواده نسبت میده کتاب رو اما طریق نمیاره چرا چون... چون تاریخ هست که قلوب رو منحره به بسره هست قطع هم تضریف شده هم نسبت کل بشتاده شده اصلا ابن غذایی خیلی تون درگه اصلا به بطره. و یکی از اواملی حالا از تو اصطاد ننمشن... یکی از اواملی هم که استاد تلواقع از زیارت برگشته، از همین بود. پونز سالشو ننوشته تو اون که کتاب هموزن این توضیح نهزن من یه صابرت بازم نیم خواستم نوزن بگم مثلا به نجاشی نوشته شیخ ابن غزاری چدید نوشته نجاشی نوشته که اصلا این اصلا کتابی در مزار داره همین اصلا به که خیلی ضریفه ابن غزاری میگرسم واضحه که این کتاب جهره و این شخص دروگوز مثلا مضمون کلمه در کامل زیاد مقدار زیادی از همین مزار اصم موجوده, موجوده. کامل زیاد ها و به اسناد ان الاسم و به اسناد ان الاسم از همین اصم که مزار کامل زیاد ها از همین مزار اصم نحرم کرده این که استاذ فرمودن که ما اول عباط ابن قولبه غ... رو میفهمیم که توصیل کرده بعد دیرز و افاق و کذابی زیاد داره بعد کامل مراشع کرده خب این که گاردان واضحه وقتی میخونه شعر اله اعظم رو هم ضعیفه هم کتابی تو مدار داره و خیلی لطیفه همین مزارش کاو زیا راو بده تا چی چون که تمام ثقات و, و مشاهیر اصحاب که در اول عبارت نوشه اینه که لذا استراحت غیر از عبارت کاو زیارت یکیشم وجود اثر میده درست می پس بنابراین تا اینجا روشن شد به تاریخ روایت روشن شد به احتمال بسیار بسیار قوی با قرینه ما با همگیه یک مخروض کردیم مثلا مخروض گفت این سند کلیمی با سند فهرست شیخ با عبارت نجاشی چون مرحوم شیخ گفته لحون کتاب بود اسمش ندازه نجاشی گفته لحون نواده اسمش شده. البته من ارز کردم نجاشی گاری بگه لحون نواده لحو ان نواده با الالف لام بلا الف لام احتمال داره جایی که با الف لام اسم کتابه اسمش النواظر بده جایی که بدون الف لام باشه یعنی احادیثش و از عجایب اینه که در بنذر ترجمان هرذره میگه لو کتاب النواظر و, و کتاب فلا و له نواظر و له کتاب و نواظر دو تا رابطه داده هم النواظر هم نواظر بدون الف لام این کار رو تا که الان حافظه ای من دکار شدن حافظه من خیلی هم دقیقی. توی شیخ نداری. این از کارهای نجاشیه این جا هم بدون علیه ناب امرده لبون نواقیه شیخ گفته لبون چه نجاشی طریق نیبانده شیخ اوازه طریق شیخ این همین طریقه که سهله زیاد نازگرده این شواهد همه رو با همی جمع جمع جمع بکن جمع نفیه رو از کتاب نوادر و این نوادر وجود خارجی داشته یعنی توی خارج کتابی بوده به نام نوازر یعنی روایات متفرقه مال نسمعه نمدر مدنگ نجاشی احتیاط کرده زه نکرده چرا؟ چون توش دوتا از زه وجود و کار دقیقی هم کرده چه هم طریقی موجود بوده لرم کرده مرهوم کلی هم از همون طریق نسخه این نسخه اینطوری بوده که هر جا طریق رو می‌بینی ضعیف از نه، اینجا چون خیلی ضعیفه. ایشون نرجوسی بعضی از محمد نستان با اینکه ضعیف باشه نمی‌کنه. اینجا فوق العاده ضعیف وقتی بس طریق فوق العاده شد احتمال بده جعلی چون این شاهده از یک حاضر یک حاضر این زعف انهار مختلفه کسی مطمئن به وضعش رو خیلی موشته منم چرارن گفتم بازم تکرارم و حتی بزارم مثلا در علماء اینا توی بواهرات رجالی تازه وارد شده یه حدیث ها زیده نگم موضوع اون که رو نه موضوع خیلی مهمه موضوع یعنی جعفه کاملا دروغه. ما خیلی از زعف ها منشه ظریفه روی دقیق نیست مثلا محمد بن سلام منشه احساسی زرمش اینه که به وجاده عمل بشاریم خوب این بحث علمی بوده این بحث این بوده که اگر شما کتابی رو مثلا کتاب رو شما الان وجاده داره میگه سؤال شما چی میگی میگه؟ همه محمد بن یعقوب میگه هم؟ میگه همه اگر وجاده بود ندیم همه یعنی اتصال از محمد الرسول نقل شده هر چیم برشون حدیث قبل از گفته این همه چه جاده بوده, بازار بوده. و از بازار خریدن حالا از این بوده ولی کتاب از بازار خریده میشه با ان ان گفت حالا مبلاش از کدا در دین اهل شاید شا 4 5 تا قائم بشن ببین مبلا سنت میگن انا انا اهم از اتصالات اما بالای 95 درصد مفهوم نظریه قاله ان انی مصادره با اختصاره اگر گفتی ان یعنی متصله به رجاله کتابی دیدن نمیشه همین همینه اصلا فرق بین من و هم داره همینه هم باید توش اتصال باشه یه وقتی میشه بحثا مطرح شد روز دیگه ان روزی میشه از ما کافی نمیگیم کتاب شما بایدیم ان... اگر از من نشدین مشکلی نیست. بعد بگین خیلی زرتو کاری ما تسامح الان داریم. ها اصلا تو ما هم این کتاب مال درش میگم این کتاب مال مفضل داری تو بازار کووهم هست 100 تا نسخه ازش باشه مناسب باشه هم از در اینطور همه همه مصابقه از با افتصال تو این حضیح ای که از رموز حدیثه همه همه دوشن شما این بحثش این شد جدی من میخواستم برای شما شعر بدن راجب این قصه دکت بکنی همه عبی الله پس این حضیح در کوف در برسا آمده و قال قضا امیر المؤمنی چون من ارکرم کتاب بنام نام ها و سنن مال امیر المؤمنین بوده احتمالا اینجا امام صادق از این قسمت قضایی رو برای نسمع خونده هم. یا نسمع خونده امام تقییر کرده ققا امیر المؤمنین علیه السلام فللهیه ازا هر قد فلن به دیه یا عدیه کاملت هم ازا نبت و سلسد دیه اما مثلا از روایت ضعیفه فوق العاده ضعیفه لیکن شواهد کاملا هم برگیه و که از همون کتالا قضای و وسطنن بوده این مرحوم کلی این روایت آورده حالا توی این روایت بحثایی زیادی هستی من اینشالا ارز میکنم مثلا در اینجا هلغت داره الباقی به مجرد حرف این مطلب رو ببین تراشینه که با تیر میشه نیست میشه تراشه بعد امام بفرموده اگه درد بیاد اینطور در نه خب با حرف در در که درد نمیگه و تراشه که درد میساز مگر اینکه این حلقات مثلا پوستشو کنده یه کاری دیگه که یا خریقت بود سوراخیش سوخته مثلا یه چیز دیگه بلا حلقات که جو در نمیاد این یک دو در این روایت تفصیلی ما بین عمد و خطا داده نشده از سر مثلا از خاضی همین اون شعری شرایه خاضی که اگر میشه کسی را عمدن کرد اونم میشه اون را قصاصا توی این روایت نیامده اصلا که عمدی ها خوب دقت میکنید نه توی این روایت تو کل روایات ما فرن ما بین عمد و خطا نیامده اینو خونه یاده ورجشوری رو در مصنف عبدالرزاق دیدم که گفته حتی اگر سَط ریش شنت‌تر از ریش این طرف باشه از موی سرش هم بیشتر از داره در امر گفتن قصاص حالا همین احتمال داره خوب دقت کنید می‌خواستم بگم رب چه شما نه نتیش. احتمال داره کسانی که اومدن دین حدیث تصدیق بکنم بگن این که امی به موی تفصیل واقع نشده توی امر هم دیگه است خوب دقت کنید چرا چون اگر ما که ام قصاص بگیم بگیم این طرف در طرف حلق بکنه خب حلق لجه که ما بیروز ظابطش عرض کردیم در جایی که قصاص ممکن نباشه منتقل میشه به دیگه بیروز یک تقریب گفتیم روشن شد تقریب گفتیم ما به روایت هلتر تمثق بکنیم برای حرمت حلق لجه کجایی تمثق باشه چون نقطه تمثق به اطلاعش که شامل اند و خطا بشه در صورت خطا که دیگه مشکل نداره چرا در صورت اند امام میگه دیه من این چون در صورت اند قصاص ممکن نیست چرا قصاص ممکن نیست چون خب لا این حرمت نداره فکرش دماغش کلیوکه انگوشی کنه كان و انگوشی بکنه خب اینا قراره من اساسا ها اراده انیو اساسا لایق نیست هر چقدر روشن شد چرا چرا یعنی از این درمیاد که حلقه مالی حرام است اصلا قشاسا نمیشه یعنی چه علتیه نو سی نقطه این نکته دیگری بخیر از اون دیروزی نکته ارز کردیم این یک نکته دیگری که در این احادیث تمسط بشه برای حرمت حلق الهیر بچه اصطبال لاشنگ شد امام در صورت عمد هم فهمود باز دیه در صورت عمد یعنی حلق الهیقی هم حتی قصاصم حتی خدا از پسباح حساساً قبول صاحب که حساساً جایزون بلکه که حساسه حیاصو اما خود از پس شرعاً لایز نوه چون هر حغل یہ حرامه شاربش تا کو گوتریشون هم بتراش گفت شده چه بده شاید امکان نداره سوچم حغل کو ووقف کنه مثل در این طرح می‌خوره چون <سؤال> <سؤال> <سؤال> ببینید یک قائده ما در فقر داریم کلیم هر وقت میخواییم یک حدیث تمسلو خونیم بونه که نوشه شده تمسلو خارجش چی احتمال داره ببینیشی اون با باز میشه بیه که حدیثی الان روادی نکیم خیلی رجوع اینو هلقت لحیتو اینه پوستش اصل که اصلا من خیلال مزار من قبول کنم که اشتار داره لیکن الان استدار به این مقدار ظاهر تو مقدار ظاهر ه این شما در کنده قبول دارم هر شما رو شرط قساط این به خاطر پوست اما ما نمیتونیم به اون شایتم از توفیق اصلا نباد اون باب رو باز بکنیم اگر تو پھر اون باب باز بشه یه برسن خیلی مشکل تو خیلی درد می خوره اینه به اون مقداری که منسوسه اون مقداری که زهره شده اون مقداری که ذهره کرده که اینه چیز دیگه اندیشه ما هم اینه که این بدیه انصافا هم با چون لحیره به در نیاد خیلی هرچه مگرد ایش هیچ مسئولی باشی اللہ نداره که اگه در نیاد قاعدتا باید در بیان مگرد موی کاشتنی باشه به اللہ قاعدتا باید در بیان تصور نمیسته که نه حرام و رضا چیدیشه چون هرش مطرقا حرامه شارق و در قصاص هم منتقل ودل میگه میداند اما قصاصا میشه اما حلال اینقدر یعنی به زفتون حرامه شاره تبدید شده به قساط و حال روشن که در آمده در روایات ما نه این روایات بقیه روایات هست این توضیح نیامده که آیا قساط عمض یا قطاع این مطلب در ذهن تون باشید این تون موان برد نزیدی هم نیامده در روایات موانی سرم این روایت رو با همین مد که قوا امیر ببینید با همین من مرهوم صدوق منفردن از کتاب سکونی آورده چرا میگم منفردن؟ شد نه قبل از صدوق مرهوم کلینی رو آورده نه بعد از ایشون شیخ توسی البته من توضیح کافی که کلاراً ارز کردم اصحاب ما در وقتی که بنا شد هم معین کردیم از سالهای دیویست و ده و به بعد یعنی بعد از ابراد ناشین از خواب تا اون زمان عمل نمی کردن شروع کردن به عمل به کتاب سکونی این نکات رو فواهد داره چون هیچ در هیچ کتابی می رسیم توضیح هستی هستیم از وقتی که بنا شد به کتاب سکونی عمل کنن خوب دقیقه دیم به همه کتاب عمل نکرده. در قسمتی از کتاب آن. ما این بحث رو مطرح کردیم خیلي مفصل بیخایم بد تکرار بکنیم ا سه چهار روز بحثسکون کن و نکاتی که نوشته نشد نوشته ه خوب خوندنهشد نس روز میشه. ما اونجا مفصل بحث کردیم که چه معیارهایی بوده به ذهن ما یکی از معیارهاش این بوده به ذهن خود ما با شواهدی که داریم اگر روایاتی در کتب اصحاب پیدا نمیکردند دیگه لااقل به کتاب سکونی بهتر بود که به اصل عملی مراجعه کنند به, به قوائد نمازم مراجعه کنن ببینید این ظرافت کار مرحوم شیخ صدو به این روایت مسمه عمل نکرده بخاطر این خط قلوب زعیف اون هم سهلیم زیاد و خط قلوب زعیف برسره این روایت نهاره مرحوم صدو به اون روایت عمل نکرد برگشت به روایت سکونی عمل. عملی مرحوم کلوی خیلی لطیفه فید مادام ما روایت داریم برای بکنید طریقشن زدیده مادام ما روایت داریم ما چرا به روایت سکونی مراجعه کنیم طبعا اون ای که هست کردن لذا مرموم کلینی روایت مسمع رو گول علا زخه ها روایت مرموم صدو روایت مسمع رو قبول نکرد روایت به اصطلاح سکونی رو بول. مرموم شیخ توسی هم که کناران عرض کردن بالای 80 درصد موافقه با کلینی میکنه نه رو. شیخ توسی هم در تحضیب خودش از کتاب کلین نرده البته این من توضیح بدم شیخ توسی که حدیث کرده به سهل ابن زیاد ابتدا کرده سهل ابن زیاد اول حدیث آیا در ذهن مباشرینه که مرموم شیخ توسی به اسم هر کسی که ابتدا بکنه از کتابش گرفته و که این دروسی مثلا شیعه طوسی در اول مشیخه نوشته اما دائمی نیست یعنی آلبیه دائمی نیست مثلا ایشو در سند ضیاء نوشته ما کانن سهل بن زیاد به همین اسناد من از کلنی انا عدته من اصحاب ما انصح کامنا و به ایشو کافی گرفتون یک چیزی معروف شده علی خوبی دیام که مثلا این کل... معنی شه است که کل مرعون صلو شیخ طوسی خطا سهل گرفته مثلا از میراثه سر. مستقیم سندیه نه و این اصل کافی گرفته خودش داره ببینید دقت بکنید گفت کلی متکلمی هر به کلام این ماشا مالم اطراف به کلام کلامی هر هم کلام این درسته من قبول دارم شیخ طوسی تو اولی تو اول, محبوب... اول مشیخه گفته که هر کسی که ابتدا به اصطلاح از خطابشه گفته این رو اما تو خود مشیخه میگه چند مورد خلاف داره خود تو مشیخه میگه تو خود مشخه... بعد، مثلا تنیشه به کلنی نقد میکنه بعد میگه و من اگر از محمد بن یحیی از اینم فلاح فلان فلان از اینا علی بن ابراهیم از اونم رقم به این طریق اثر کلهی از اونا خودش چیزی به خبر آورده دیگه چیزی که صحیح است طریق قص الارکتاب این طریق به کتابش نیست طریق به روایت بشه چون جای طریق به کتابه جای طریق به روایت به هر حال ایشون چون تصحیح کرده از کتاب کلهی گرفت مرقوم صدوق ببینید آخ روایت صدوق صدو این طوره فی روایت سکونی ام نعالیه یا ام نعالیه قضاق لحیه من همین هم توضیح دادم مرمون و صدوق طریقشی در محشقه به سکونی داده همین نسخه و ناشه به شهرشم داده سابقا مشکل این استگاه یعنی صدوق در همین نیم روا از سکونی روا اسمایلون و مسلمم و سکونیه روا اسماساعیل رو عریضزیات هم س روا اساعیل شاعری این هم سکونی این سکنی. اینا ها گفت روا از همون مشرق مراجعه می کنیمیم همون اما اینجا گفته روا از سکونی خیلی عجیبه این تغییر عبارت این یکی دو چراره اسب کردن کتاب سکونی در عصر اینجوری بوده، اما جعفر همه عبی هر آواری، ان علی قال کتاب سکونی چیزی بود. خودش بعضیش قانونی قال قال رسول الله. این کتاب سکونی می‌گه، كل کتاب سکونی می‌گردی. اما الان که ما داریم روایات و همهش این ترتیب نیست. بعضیش ان جعفر قال علی بود. بعدش قال علی بود. ان جعفر ان قال قال رسول الله. جدا کاملی حالا ما از موعظه سکونی حرف داره خوشا شد این دو تا در اینجا اصلا هیچ نداره پیروایت سکونی ان علی ال قضاۃ الله یه ان جعفر لذا ما لزمه ان به احتمال قدی همون قضا یا این روایت یعنی سکونی از کتاب غذای آورد و, و احکام کردیم تا دیگه این کتاب بین سالهای سی و پنج سی و هفت که همه رو به بودن، تا حوض سالهای شست شهرت پیدا کرد قدیمترین و اولین است که دنیای اسلام موضوع شناخته قبل از این نداریم کتاب و کتاب و کتاب و سیان اولین کتاب در دنیای اسلام اینه گاهی یه کتاب علی بفتن گاه کتاب و عبیرافه بفتن گاه کتاب و عبیرافه عبی بفتن گاه کتاب و حالت اعور همدانی بفتن بگیش شهرش من بیشت که یه طولانی به چار پنگ درستم نمیشه نگوی شهر بود، چند هفته شهر داده بشیم این کتابیست بسیار طولانی و مفصل، به ذهن ما این روایت سکونی مال اینه همین کتاب دست نسمع بوده نسمع نه بله. اول و بمشن و ظاهرن وله علم و این کتاب من چون ارز کردم دیروزم کردم در کوفه مشهور شده سنمیه ها این کتاب دیدن زیدی ها که خیلی این کتاب را اعتماد کردن سنمیه ها این کتاب دیدن مثلا در ده و از کتاب زیدی بیگه رویان علیه در حلق لحیه همین دیر همین مختبه نرکن همین مختبه کارم به شما بودن مثلا نگاه نیم در کتاب ابن هرد در این جلد ده جلد ده تا نصف ها ابن هرد ما لیه کتاب محلس و کتاب دیگر ابن هرد تکمیل کرد. ابن هرد میگه حدثنا مح... اخبرنا اخبرنا محمد بن سعید بن نبات اخبرنا عبدالله ابن نصر آسر ابن نصر الى معاویه موسد معاویه انو وکی وکی از اهمه شعرت به این احرستان از اینجای از دست انا اخبر انا منحال ابن این محل کلامه من زیاد تذیبش بیشتر باشه من عبی عبدالله سلمت ابن تمام شغری به فتحه ایم این نسخه توصیح شده قال مر رجلن به قدرن فوقت منها علا رأس رجلن فأحرقت شهرهو فروفه اله علی بن عوی طالب این سنیه این سنیه علی ابن طالب درس نکرده اینم ظاهرا از کتاب داره نرم میکنه یعنی این هم نرم خودش جزوی تابعی نیست این سلامت ابن تمام او سنه دیروز ما شبه این اجله سنه رو گفتیم دیگه تکرار رو می کنیم بود فقد ظهري علي عليه في هديه جلد 10 محلسه دوستان اگر این کتاب جامع الاحادیس اون باشه حدیث شماره هشت همین باب 18. خوب دقت بکنید فقط تهذیب نقل کرده به بغاصه به کار گفته نقل کرده از کتاب محمد نه احمد بن توضیحات زیاد میشه اسم کتاب نواظر الحکمت و در قم و این کتاب مشهور بوده کتاب کبیر بوده انه ابن ابن ابی نصر است ابن ابی نصر عند الاغلاق شما بزنتی از استادم فهیدم بزنتی در جلد 22 معجم مراجعه کردم ایشون بزنتی فهمیدن لذا مرحوم آقای ترسری هم بزنتی فهمیده میگه چطور میشه محمد بن احمد از بزنتی نقل نمیکنه سند جابجایی داره اصلا خدمتون که اشتماف هم میگن این بزنکه نیست آنخه اینشونی که از علمای اهل سنتیگر هم با درسته میشوندیم اصلا مرموم محمد ابن احمد از بزنکه نقل کرد هر دو بزرگوان جا و جا فرم مهران این از علمای شیعه است در بغداد بوده با بغدادی ها نشسته و از که خیلی از اون ملایی های تون بوده از اون احل براقه که خیلی این خیلی که خطیب بغدا در تایس بغدا شهرام شده خیلی فهاشی بشه خیلی حتی میگه کتاب ازش پیش من سب با شتم صحابه و احادیث عجیبه و اصلا موی من به راست شده این به تابره میشه آخه هم اینجا تن شده به خطیب بغدا فهاشی هم کرده و اینا ایثاق مهران تذیه شده البته مهران چی ما از اینجا بین مرحوم توستری با خت خط... از همه ای وقت خیلی چند داشتن صرفا مثل این هر که گریز آب نیست مزه گریز آب این شدیده که از من تصورشم نمیتونم بکنم این چرا خویص است و خیلی بعد و بیراه این بیچاریست ان ابی غانه این هم قطعا از علمای اهل سنت که الان نمیشنسی چون در کتب اهل سنت وکی آمده لکن وکی لقبش ابو غانه نیمیتونه شدی که از شخص دیگر در این کتاب تحزید اینجور از ان منحال ابن خلی این قلطه سعیش منحال ابن خلی و دل من همیشه عرض کردم خود دقت بکنیم ما یه ملگادی رواه اهل سنت داریم یا سندش خراب کردیم یا متنش خراب کردیم یا حایل اصلاح می‌کنه چون ما باجال اونها آشنا نلودی حتی تو تهدید هم ما چون ما فرق نمیکنه نم من اینا خلیل از علمای ما زمنا خلیفه نداره این آقا من ابن خلیفه اجیز و به همین سرعتم در کتب اهل سنت هر کلمه‌ای براتون این سنند رو گوندن ان سلمت ابن تنمام درسته اینجا در خراب نکردن از شغری قال احرق احرقه احرق این در حقیقه اراغ اتباق افعال علا خلافه قاعده است این در سرفت من ملازه فرمه احرق رجلون گبرن این عبادتی ای در سنیه هست یک کمی بایی بفرداره فیها مرقون علا رأس رجلن فلحب شعره. مویه او داره فخته سمو داره که اله علیه این هم چون کتاب قضایه قضایه هایی بوده که در زبان واقع واقعی شده در اونجا زد کردن فعجلهو سنه اینجا هم عجلهو سنه ما داریم فجای فلمیم بود شعر فعجله علیه به دیگه این رمایت اصل در کتاب اهلستان اون خرابیایی که ما داریم با اونجا اصلاح کردیم مرحوم شیخ صدور هم چون این روایت شاهده دیگه هم داشت بی این آزوان نهار کرده رومیه انسلمت ابن تما که از کلمه گهروگیه نه اینکه که باشه با شراطه زدیه فرشون طریقه ما نیست لیکن به نظر ما بیشتر نظرش اینه که میخواهد بگه این حدیث بیشه مشاهد خون ما قبول نشده بوده نسال الله و عالم و محمد